الحمد لله رب العالمين و صلو اللہ سيد و رسول اللہ و آده الطیبین اللهم جميع رو که مطرح به بود و از کردیم که این مسئله در بغداد در میان اصولیین و متکلمین من این نقطه رو چند بار ارز کردم که با این که تفکرات قبل اول درن چهارم یعنی پنجم که در محل بغداد ماست وارد دنیای اسلام شد لیکن تأثیر اساسی در اصول ما نداشت یا در فیعت ما تأثیر بیشتر موادس کلامی بود موادس فلسفی ما تقریبا در موادس فلسفی خودمون به طور خیلی واضح که اصطلاحات فلسفی و تأثیرات فلسفی رو میبینیم تا اونجایی که اینو بنده قدمی شد تا اونجایی که من مراجعه کردم اولین کتاب کتاب مرمون سخرال محققی این بسر حالا مسید خیلی اصطلاحات فلسفی در شکار برده شده در مصال فلسفی بعد از آمده اما هم ندیدن قبل ایشان اولین شخصی که در این جهاز متحصر بوده ایشانه تا وجود مربوم خارج نسیر و حتی گفته شده در میان اهل سندر فرزالی حتی یه جای دیدم بعد مراجعه کردم تیدایش نکردم نمیزم رو کتاب بود که فرزالی اولین کسی بود که منطر رو رسما وارد قدوم رو و کرد چون اون وقت های علمیه با قوضه های علوم مثل طبیعیات و یا مثلا منطق و فلسخوزی ها داشته کی نبوده و حتی اصطلاحات منطقی رو هم به کار نمی بردن در کتب سید مرتضا کتب شیف که در برمه پنجم نیما های برمه پنجام با تماما این اصلاحات رو یا خیلی کمی یا برسولن نمی بینیم اما تأثار کلامی خیلی پرابان و از چون که ادهی از بزرگان متکلمین در کتاب‌های کلامی خودشون متعرض در و اصول هم شده و ما این بحث و الان جالبته خیلی تأثیر زیادی نداره از کردیم ادهی از و اصول مثلا اطلاع شه علاواجه اتیان معمول به علاواجه یختی در اجزا این در حیرت اساساً تواسط متکلمین مطرح شده نه توسط حسولی خیلی لفتاید داره که ما در وقت مبارس متعرض این نکته شدیم که از این اطلاع مرمول در این در حقیقا یک تفکر کلامی بوده و متکلمی مطرح کرده همین به هر حال مباحث حسولی این مرحله ما چه مظموم شیف توسی و چه مظموم زیر محتضا پرتعن و جزمن متعصده به قوافظ کلامی بسیار سنگیری بوده که در اون زمان مطرح شده از کردن در این کتاب قاضی عبدالجبال که بسیار کتاب واقعا مفیدی هم. اصلا کتاب نزارن اون عرب های کتاب بیزن شمیل محضور مطفق کردیست به نام علموحنی که بیس چرده شده خیلی مرد پتخاری اگر راست باشه که در شهر حال شنشتن چهارصد هزار صفحه کتاب نمیشته واقعا یه حجوبه یه در هزار به لبس که آسانه اما واقعا به چیز قریبی و اهل ره بوده در تهران بود یکی از مرگوهای متفکر دنیای اعتضایشونه از کنم مرگوم سید که یه مدت زمانی برد از ایشانه با یک ذرافت و ذرکتی به اصطلاح به چاپ جدیدی که شده من شکن دقیقا در خود تخصیل و معنظم چند جز در این چاپی که شده کتاب بیستون کتاب رو در اشرافی نقضی کرده که نشون میده با من علمای بزرگ ما سریعا به اصطلاح اصطلاح عمل نشون به افکاری که قرردیش رو نرد کرده اولش هم از به اجموع تصادفن اولای کتاب شاکی دو همین آیه منی رسول رو برده و مناطقش که باییشان داشته همین آیه که ما به عنوان رسمی حالا قطعا پشت پرده هایی یعنی قطعاً مواردی بوده که به دست ما نزده. با به عنوان رسمی تبیرات اجموع رو روی همولین بار در کلمات شکل توسی می بینیم. و حتی صدایم عدده ایش من دارم ناقصه قدر مراجعه رو که در عدده ایشون برخورده با اجماع چی جویست اما در کتاب اختلاف زیاد این کتاب معروف ایشان کتاب اختلاف خیلی زیاد متعرض اجماع شده فراغاست یعنی مسائلی رو که مطرح میکنه مغزمش دلیل رو اجماع رو کردم خ توجای که من کتاب رو دیدم م همه کتاب رو خب پس زیادی کتاب رو سالهاست تا سی سال, سال باش مع تقریبا کتاب بودیم کتاب ذادهرم اصل یکی که از کچوب خلافی بوده که یکی از لحشان نک نمیاشتشته و از تعویر کتاب هم نمیتونیم از همینبار رو دستسی فعلن مثلا یم چند کتاب شافی بود علفی بوده این برای ما روشن نیست که کتاب مبسود مارا خود شیخ تورسی این یه کتاب تطریعی و فکر بوده از احرسانت که کاملا واضحه که اون کتاب رو یه نفر شافی نوشته. این دیگه مبسود برای ما واضحه که ایکی از از تو نمیرام فیلن اون کتاب کیه و اون کتاب چیه اما شیخ اون کتاب رو گرفته و تفکرات شیعه را در اون کتاب درش کن یعنی به اصطلاح انروزی های ما سوال رو از اهل سنت گرفته پاسخ رو روی مبانی شیعه داده یعنی اون وقتی آمده فروغ رو بحث کرده همون فروع رو شیخ اورده و که ایشان روی مبانی شیعه جواب داده یعنی نتیجه گیری و قفن رو روی مبانی شیعه کرده چند تا کتاب خلاف مقبل شیخ داریم در کتاب تاریخی اهل سنت اسماشون من چون نشده مقارنه رو کنم الان برای من خیلی واضح نیست آنها میذن میلند. یه خواشی بیه میشن که اگه نت فلان باشه، الان هم ما میذن که خود نداشته شود. الان چه زیان خود نداشت؟ برایم کتابش که واضح نیست فعلاً که یاد که مؤلف خودش مبنایش. لکن معلوم شده که دزد الان است. ظاهراً ولی علم مهم دلیل، اون کتاب رو گرفته آن با یه تغییرات یا آزادشی درک یاد داده. و. چون در مقام استدلال بوده این هم حالا دیم خواستیم جوابت بشیم استدلال شیخ در کتاب خلاف متاسفانه خیلی جهاز جنبه جدلی داره اینو خوب دقت رو کنیم از یعنی انظر قابل اعتماد نیست. این متاسفانه در کتاب خلاف این هست خلاف شیخ جنبه جدلی داره ما معجم به یه جدلی بوده همین مقدار که رو تونه سرخمقام رنگ بکنه اولا قبول داشتیم باشه را داشتی باشه این از نظر علمی شایسته نیست، مقام شهر زن و نمیخوره تا از این کار رو بکنه وقتی دیگه متاسفانه در اون زمان یه رنگ رستی بوده در اختلافات مذاهب که اون شهر حافظ هم اگه شیده به اشاره به ه همه را قوضه برینی افتاد دومدتش ها به اصلافات کلامی زده بین نقواه های در عالم های اسلام چون نایی در حقیقت را هفت ساله زنن مرادش از حقیقت برهان هفت ساله مرادش جده متاسفانه به این تا راه های برهانی رو پیش بکن راه های رو پیش رفتن و این هست در کتاب شلا متاسفانه وجود داره یعنی مثلا بعض جاها که مثلا اهلش ابتدای از و یک گرایی بختان و استدلال به اخبار کردن شیخ صراحه میگه این اخبار احاده حالا توجیه علم و عمله و اینکه شیخ خدای حجوان کنه هر رو باشه مثلا در جاهایی که شک در یک جوزه یا در شرط اگر مثلا ما نظر بده فلان مثلا بسم الله جوزه ایشون تمسک میکنه به قاعده که اختیار استفاده میکنه انجام یه که شیخ قائل کی یہ شے شند از فن اصولی بغاوت بغیر شکل در اصل یک گرد برای عجب یعنی انسان کاملا یه احساس خیری به دست میده که چطور یک خریر واحد در یک مورد به بغاوت تمسک میکنه این همون مورد که شک در جزئیات اشیایته به فارغ اختیار لازم واسه این رو بنوشتم یک نوع اسخات طرف مقابل حالات جدلی کتاب شلوغ این محسوس یعنی. و نزا این احتمال هم هست که کلمه اجماع رو شیخ به عنوان جتون اگر دیروز یادتون باشه هستم بر جا جدلی ما اجماع رو بکنم بر جا برهانیه مثلا میگیم مثلا یه مسیحی میکیم فرانچید توی این جیب نیست روست این جیب نیست انجام میگیم. همه مسیحی انجام کنیم ما از اجماعشون حالت جدلی میخواییم افحامشون بکنیم میخواییم اصخاط خزم بکنیم دیروز درست کردن به هر حال در کتاب خلاف اونه که ما به عنوان دلیل و نه الان ملاحظه میکنیم شفت چهار راه را انجام داده گالی اوقات که این بیشترم هست یه اجماع و و اخبار گالی اوقات میگه دلیلنا ها روایات اخبار را, را میکنه. اجماع رو ذکر نمیکنه. گالی اوقات به هست اجماع رو ذکر میکنه، اخبار رو ذکر نمیکنه به گاه ماده بیر شده اون تک دلیل اونه انده ها مصابه ها لحظات داره میشه نه کلمه اخبار رو میاره نه کلمه اجماع رو میاره مجموعه استدلال راه روش سنتاج فقیه مربون شیخ در کتاب شرام کتاب خلاصه رو انصاف اما با امون آرائشه نباید انصاف مشکله چون کتاب واضحه امینا در حد منافشات خلافی و مسلکیه معلوم نیست انتخاب رعی باشه و نظام خیلی جای پاش روشن نیست بلکه این عبارت معروفی رو که ادعا می که شیخ کاهی در یک مسئله واحده در خلاف در یک جا ادعای اجماع کرده همون مسئله در یک باب دیگه آمده همون مسئله ادعای اجماع بر خلافش کرده هر طوره که چون بازر یه مسئله موکن که هم تو باب وی بی میاد تو دوتا دو باب یه ای مسئله چون دوتا دو باب میاد باب و یکی توی باب وی که مسئله رو عرضه توی رهم که مسئله رو عرضه کنم که اجماعاً حکمینه خلافه اجماع لذا احتمال بذیم شیخ کتاب رو کلا حالا یا بغول استاد کتاب هاش این مقداری مثلا درقت نشد فکر نمی کنم. احتمال میدم هدف شهر این بوده که رو اون کتاب خلافی که از احل سنت گرفته فکر خلاف من اینشانه شاید توی بخصه بیواناستاد عرض بم که فکر خلاف بوده شیگه از انهای فکر ما امروز استاد هم هم بشونیم فکر مقارن عربا میگن مقارن تلفظ می کنن زبطش مقارن تلفظ این تلفاز عربا در کشور عربی فکر مق این فقه مبارم و سابه من فقه خلاف این یه توضیحی میخواد اینطور طور خیلی آسان نیست که اصلا حقیقت فقه خلاف چیه اگر آقا این وقت داشتن که تا با رو زنون زیر کلمه خلاف در آنجا من خلاف داره دو تا توجیحیشون میکنه برای فقه خلاف توجیهات دیگر هم داره حالا چون وقت من مناسبی زنم یه وقتی این خودش یه بشهی بوده در فقه خلاف که عنوان و خلاف نوشته شده به خلاف این کتاب تذکره علامه تذکره علامه که شما نگاهمه ارا اهل سنت نداره دیگه متعرض ارا اهل سنت شده بهش لكن تذکره علامه گرفته شده از کتاب شرح الکبیر ابن قدامه است که اون هم از کتاب عموی خودش اون هم ابن قدامه گرفته شده اون المونی اصلش مال الونی ابن قدامه بزرگیه پسر برادر ایشون هم یک شرحی در خود ابن قدامی محن فقیه هم داره پسر برادر متن محن فقیه شرح داده از کتاب اموش زیاد استفاده کرده و در این کتاب چون ای شخص همولیه ابن قدامی شخص از فرخ خلاف این بوده که تعیید مذهب خودش رو بکنه نمیدونم مطلب جاوستاد چون فرخ خلاف الان چند شد تا این جالبته اتفا می داره گاهی فقه خلاف هدفش این بود که آراء رو مطرح بکنه مثل الفقه اند مذابال عربه که اخیران این شهری جدیری در مصر نوشته یا الفقه اند مذاب خمسه مظموم مرونهی که در لبنان نوشته گاهی مراد از فقه خلاف طرح آراءه. گاهی مراد از فقه خلاف اختیار یک مذهب معینه این سا اشتباه نشه هم. مثلا تذکره علامه اصل کتابش ما یک فقیه همولیست برای اثبات صحت فقر خودش نوشته. اما کتاب خلافی که ما شیخ تولسیست میگه دلیل اونا خیلی به نظر ما علمی نمیاد. یه بهتر از دستانا اول بزنزارش اینکه بخواهد رعی خودش رو بگیه بگه, بگه رعی ما اینه و رعی ما اینه اما انصافا وقتی تحلیل فقهی و تحلیل و اصولی میکنیم شاید احساس میکنیم موارد زعفت داره، موارد نقص داره، و احتمال میدیم که شاید نظر شیخ خوک نخیل اول بوده. خلاف خیلی اول مثلا سخن های یا اینو گفتن دلیلشون اینه، خمبل یا اینو گفتن دلیلشون اینه، شیعه ها اینو گفتن دلیلشون اینه. یادت کردی؟ که خلاف دوچوری شد، این دوچوریش برای تو نوشتن شد، یک دفعه دوچوریش این که میاد آرا رو مطرح میکنه. دلیلش همونیه. می یه دفعه نه میخواد دیگه من درست بقیه باطن هم کتاب تفتیه علامه اساسش یعنی کتاب شرمکبی بر اون اساس نرشته شده این چون در حوضه های ما درست یا نیفتاده از در کتاب کشف زمونم توضیحی دار راجبه علم خلاف در حوضه های ما درست حوضه های در حوضه شیعه چون ما در امساط اهل سنت زیاد نرفتی انصافش و لزوم من حتی از معاصرین نمیگم غیر معاصرین از, از, از صباین نمیگم که مثلا مخالفت تشیع مثل فخر رازی میگم مخالفت شیعه دخلی به اجماع نداره به اجماع موزر نیست مثلا آراء شیعه رو در اجماعاتشون خیلی مؤثر نمیذارن نگاه نمی کنند البته خب به خاطر اینکه ما رو دیگه به خودشون خارج کل دین این طرف ما داریم بیشتر نگاه می‌کنیم کتاب مرحوم خوستگی به مناسبت دیگه ما شش دلچیز داری نام. میگه که اصلا آرا ادیسونال مواثر نیست در اجماع چون به اصلا بعضی زحمت داری برای از این برای ایشان. از او از این برای این امام کن یا آرا اونا معتبر مواثر در چون رواج دلخواه میکنن کوفاره نسل. مثل از اون صاحب حداقل یکم فتوش و صاحب چون صاحب حداقل فتوش نیگو فقط بعض از مثل و در احکام ظاهری مثل تهارت و شده و در واقع کفار حالا به هر حال این صافت هم وسائل هم تا با حدود و وسائل آخرش جلد مونزده ایشونه یا گیجده یه با میدارستی یه حفنش رواید شده که و از این که هره که احل سنت کلن کفار هم ایشون هم اختیارشنی صاحبه داری <تصفيق> <تصفيق> نه ظاهریه ظاهر واقعا میخواد جمعی جمیه آثار برای برایشون باریشون فقط بعضی از آثار داری که مثل زن سنی بگیری و طاهر باشیدن این هم به خاطر سهولتی در شیعه بعد از دیده ماهی الان ماهو حق خیلی خیلی اندرم تحریش اینکه حق اندرم اینکه اینا واقعا کفارن حالا این تحریش مسئله داره خیلی مفصل داره. داره؟ یک جلد کتابی هم از در طهارات از چاپ شده ایشون اون جلد متعر دهین بحثه. مفصل با صاحبان درخواستن که مبدا ایشان درستی است. به حال حالا باز این بحث، فقط من به عنایت کرمیه شما اونجا مخاطبنده اون باز بشن. که قرار این با همگی این رو اون میگه شیعه معتبر نیست چون مسلمان نیسته این میگه نیست. با هم در کتابات حقیق سنت اگر بیدی کتابات ما هم هرستیم تو نیست ولی به ظلم در اجماع محصر نیست مهم اجماع خود اونه اوناشون کافران ترسیل در خود نادره بنا در نیانشگی ای یکی خودماش نادر بستهاش چرا؟ بعضی عبارات ساک جواهرم مشعر برمینه بعضی عباراتش همش نه بعضی عباراتش مشعر اونها خیلی که خ اما حداریخ که خیلی مستدیدیم آیا عشق مسائل اصلا بابی قرار بودتن اصلا سابت بابی در مسائل قرار به کفر اینا که اینا واقعا کافرن هستند نه تا سیره احترامی خوده حالا به هر حال اون سیره در حد امور ظاهر است علایه از این معاسین خود ما هم ما بردشون بحثیم کردیم بود که اینا آثار هستند واقعا حالا من نمی خواین بحث بشن، از دیگه اینه که بحث خاص خودش به هر حال برگردیم اون تاریخ خودم اون چیزی که من به ذهن میرسه خوب دقت بکنید، هی من اصال میگم که به ذهن خود بنده میرسه چون بعضی مطالب رو نزد مشایخ چنین در کتب و اصحاب دیدیم. لذا احتیاط می‌کنم میگم به ذهن خودم. به ذهن من میرسه که شیخ جورائی که میگه دلیل اونا اجماع و فرد و اخبار ناظر باشه به رأی کوف ها و قمی‌ها چون من نشینامم استش درس‌ها رو متن وقتی یه اجماع الفقه مرادش ها باشه و روایات ها و اخبارها مرادش قمی‌ها باشه شیخ این دو تا رو جمع میکنه می‌خواد بگه این رعی مقبول بنشی است هم در مکتب قم و هم در مکتب بغداد روشنش. بردی جه ها که خب ما دیدیم یه دلیل ما اجماع آلو بعد که نگاه میکنه این وعی در میان بغدادی ها بوده روایت نداره یا لاقل به دست شیخ نرسید برید نیست یعنی شیخ رحمه الله فعال میگه کسات اشتغال هم داشته واقعا خب کتاب خلاف خیلی مسئله از این شروفی نیست مسئله رید زیاد داره ایراد مسائل مسئله مسائل مسئله رید هم زیاد داره. این نوع احاطه علمی میخواد انصبات قدسه الله و سده. اگر این تصور رو که من کردم درست باشه خیلی عظمت علمی شیخ رو اثبات میکنه احاطه شیخ رو اثبات میکنه و در بعضی از ها میگه دلیل بنام مثلا اخبار روایات رو کرده این اشاره است که تو این مسئله در بغداد اجماعی نموده روایت بوده در مسئله اما تلقیه و قبول دقیقا فرمودی نبوده در بردان و بعد جهان که هیچ کلومه ذکر نمی کنه به قواعد و اصول مراجعه بکنه مثلا دلیل اونا مثلا اندل ارسی اختر دیدانه که اصابت یعنی در, در مسئله روایات نه اجماع اصحاب ما در مقداره اگر واقعا تصوری که به ذهن بنده آمده از مشایف نشیدن در کتب هم نایدن راست باشه انسان دلالت برای عظمت مقامو شیخ میکنه از داره خیلی به احاته خیلی احاته میخواد برای انسان که در ریز ریز مسائل این احاطه رو داشته باشه که در این مسائل مدارک اجماعه یا خبره یا یکی از اون دو ساست یا هیچ کدوم اما عملا تو کتاب خلاف این هست. عملا البته گاهی همیشون در تحویل می اخبار اخبارو هم و ما عملاً چیزی نمی بینیم این هست افتیان هم سخت با نرسیده به هر حال یعنی در مقام تصویر گاهگاهی به ادعای اجماع میکنه می اجماع نیست در مسئله انصافاً گیر داره اما احتمالاً شش نظر کلیش در این چهار نقره استدلال این بوده از کنسون کتاب قده پیش من ناقص هست فعلا مبحث و اصولی ایشان رو خبر ندم در اجماع اما مباحث فقیه ایشان چرا؟ البته شیخ هم که جهاز کردن در کتاب مقصود چون در این مقام نبوده تمسک به اجماع نمی کنه قالبا می ولد یه علیه اصحابنا و روایات و اصحابنا تعبیلش اینه در مقابل اون رأی سنی. در کتاب نهایم که فتاواش اینه روایات احتمالاً مرحوم شیخ قدس الله نفسه در کتاب خلاف به مناسبت نقل آرا سعی کرده اشاراتی هم به آرا اطفاقه داشته باشه داری هم نگه ای از خوابنا منظر بلا میگه تو شلاف اما احتمالا با همین دلیلونا ایشون میخواستن یک اشاره بکن بعد از ایشون عرض کردیم مرحوم سید مرتضا داریم خود بگیر ایشون بحث اجماع رو دارن مفصل دارن همون تخریعات آمنه را هم دارن بلکه هی جواب برگردن به مبنی شیه و اکثر مقداری از اقوال مقدار گفتن این مسئله اجماع در کلمات شیخ و اجماع در کلمات سید مرتضا و کزا مسئله خبر واحد در کلمات شیخ که بعد سید مرتضا بوده این نشون میده که جو علمی بغداد در این نتیجیگیری اصولی موثر بوده یعنی ما اون نقطه اساسی رو به نظر ما اینجاست ما با این که در روایات نداریم که اجماع و به خاطر این که مشتمل بر قول یا کاشو از قول محصومه ما نداریم چطور شد مثلا بعد از غیبت سغرا به حدود ست سال یه دفعه این تو اصول و ما پیدا شد به نظر من تحت تاثیر اجواء بغداده و تحت تاثیر قرار گرفته و تقاربیست که شیعیان در بغداد با مکتب اعتزال و عقلیگرا و کلامی نزدیکتر میشن هرچی مکتب قوم سنگی کرد به روایات و نصوص نزدیک بشه مکتب بغداد سنگی کرد با اصول عقلانی و با قواعد اغلاعی نزدیکتر بشه این دوتا مدرسه فرقشون اینه و در کتاب تصویل اعتقاد مرهوم شیخ مفید خیلی از جاها حمله او به شیخ توی صدوق هم همینه میگه شیخ او جعفر در این مسئله روایت دیده و اورده های ایراده تحقل معناش نکرده و بعضیه یک سالی در صحب و ندیدیشون نستاد داره شده برمو شیخ مفید که ضد صدوق ناشته شده اونجا تعاویش خیلی تنده این شالا مفید نباشه خیلی چه مثلا این نهل علم نهل مثلا فقه نهلی مثل راجعه صدق عبارات بدی داره خیلی عبارات بدی داره انصافه هم کار ناسوابی اما تو همین تصریح اعتقاد هم کم نیامده شهر مفید انصافا عبارات ایشان در تصریح اعتقاد عوج مکتب بغداد و قومه اگر کسی میخواد مقدار بقدار دخون رو خوب ببینن کسی الاتقاط ایشون خیلی وقتا به ایشون حمده میکنه که این اخکار از روایات و شیخ لم حصل معنا معناها اون حقیقت معامی این روایات رو درست نکرده در بغداد این هست که انصافا یعنی سعی شده خوب دقت کنید سری شده حدود مساله جنبه های و اغلایش رو پیدا بکنه جنبه های عقلیش رو پیدا بکنه جنبه های علمی و گرهانیش رو پیدا بکنه این هست انصافت در در یه مطالبی در یک جامعهی گای که جا افته دیگه حرف های اولیه رو نمیشه در شما در بحث سبوت هلال در کتاب و ارغه نگاه بکنه میگه شاهد با تلفن شهادت دیده که من هلال دیدم آیا ثابت میشه در دیدم با شما در شده. الان یه شوانه میره این فرق مطرد میکنیم با تلفن. چرا چون زمان اصابه تلفن تازه همزید صداها خرقاتی میشه و هیچ معلوم نبودیم چیه داره صحابه می صداها امهان دقت قطع میکنیم. اون زمان مناسب بود فر مطرد باشه اما با پیشرفت علمی که شده دیگه اصلا تره این مسئله وجی نداره اصلا جاش نیست. ما از که مشکل مهمون شیخ تولیسی رو ما توضیح داریم. چهیش سوسی و سیر مرزهر در بغداد بودن بغداد یک محیط بازی بود آراء و مذاهر اسلامی می شد، خود شهر یک شهر منفتهی بود مثل فرسون الان فرسون یک گوهانی شیعه بخواد فرسون مرکه یک شهر مهم آمریکا امریکا تو باید تو قوم مثلا یک توی روسایی در جنوب و خواهدان خودم خب حتی باید باید کنه وضع بغداد اینجوری بود اصلا شیخ میدید الان دید تو بغداد بگه خبر حجت نیست که شیعه اصرار دارن این قبول نمیشه دیگه یعنی حجت خبرواد دیگه سکه و از این روزو دیگه نمیشه الان ما در میان نزاعهای معروف بین حنفیه ها و شافیه ها نمیدام متلیبیان هم خبر مرسل نمیدام متلیب حنفیه ها اصرار دارن خبر مرسل قبوله اما شافیه شافی خ 80 صفحه شد دیدن او یاد نرفته فقره به حدیث موصل کرده نه الا من اشتراک کرد از 80 ساله خود شاطبین اولین کتابی سی در دنیای اصول به ما رسیده موجود فعلا که حدود زمان حضر رضا شده کتاب اردسادهش 80 صفحه 100 صفحه به خبر موصل نمیشه و اصفار کلی خبر موصل موجود نکاتب این مین یاد حنفیات در ش هم اثر داره چندین به باید م سر هسته او بش عمل که شاابری رو جمع بکن یکی از نظه های و اهناف ها که خبر مست سر قابل اعتماد هستکننشا مثلا شخص نصفر را که می اون خوند دی جممال حافظ زییلاییشون هنفی قویشون هم خ میگه این خبر مست این خبر مست این تققیه انسان احرااق میکنه بعدها او نمای اهناف مشهورترشون با شابیری این موافق شدن که خبر مص قبول نبید. این یکی که چی چطور افتاد یه بحث استاندارد علمی شو در بغداد این مسئله این که یک طایفه از بزرگان یک چیزی واسه بزرگان مذهبیات الله تعالی موضوعاً کمونیست‌ها تره یک مطلبی رو بگن این کارشیم حجیت پیدا می‌کنه این مطلب حجیت شما در بغداد جا افتاد در دو محور جا افتاد یکی محور جدلی که شما عرض کردین یکم محور برهانی خوب درختون این جا افتاده بود قضیت خبر جا افتاده بود اگر شیخ مواظبه خبر گفتین کلمه علی اکبرین گفته اینکه شما از تلفن مثلا میشه اینو ارجاع تلویزیون دیدین اردم صحنه همه ساختگی همه جعلی ممکنه های باشه اما اصل در ما به نظر میاد که این آمل مکتر وقداد و به اصطلاح و روشن فکر بغداد وقداد حاکم بود از یک طرف و کسیت و علما و تلقیه و قبولی این مطلب این منشع شد که علمای ما در این حالی که بخوان حرفای اونا رو قبول نکنن با یک صورت درستی مثلا پس رو چستویم که اجماع او جد پیغمان لا تشتیم عمومتی علاقه اون یه روزه بودن چند سال وقت گیره. تاطور معنایی داره. تاطور یه خب شیعه هم آما همین خب این الان الان اگه بگه اجماع وجد نیست این از نظر حوزه برداد از نظر علم راج در بردار مکتب سعاد در برداد این محفوظه. بگه خبر واحد نیست کسی و اینو نمیکنه. لذا به نظر ما این منشأش شد که علمای شیعه تو دقت بکنید بیان این حرص رو قبول بکنن نسبت به اون مسئلهی که اونها گفتن در سه اشترمه اممتی میگن برای آقا قبول داریم در سه اشترمه اممتی عراض دارا قبول داریم لیکن چون پیغم درم فرمود ادمی تار که و سقنه کتاب الله به عطرتی جمعش اینطوری میشه مدازه از امت, امت امتی که مشتمل مجتمع بردمانه اگه بنامشو به انها ملا یکتره و حتی ازا علیه ال اختراع از قران جدا نشه کردیم و بعد از این شبهه امی که دیروز مطرح کردی که اگر شما بگیم آراء ها کل واحده فینانسه جایز الخطا چطور میشه مجموع غیر جایز الخطا دیروز آخوند یه استاهاله خب شیخ خیلی راحت جواب داد و اصل مقدمه اول قبول نداریم در روزم از دلم که وقت خبر باهر چند تا مقدمه هست این مقدمه اول شما صد تا رعیه اینا همه جایز خطا آخرش خیلی جایز و خطا این مقدمه اول قبول نداریم چون در صد تا رعیه بنابرای حدیث سقنه باید رعیه ما معصوم باشه پس 99 تا جایز و خطا یکیش غیر جایز خطا محصول شد میشه در جای در اون چوبه که دیوز عرض کردی اون چوبه که دیوز ارض کردی علمای شیعه در برزا چون میگن اینا آمدن گفتن مستحیله از اون برخوب اهل سنت میگفتن واقعه در حیرت شیعه آمدن گفتن که ما هم به جنبه های عقلالی تمثب بکنیم هم جنبه های عقلی قصه رو مظهر بکنیم هم زیر بناهای خودمون رو مظهر بکنی مبانی این فکر خود اون رو مسئله بکنیم خب اونها آمدن گوزن دارت اشتماع اممتی خصوصا اون مسئله سقیفه و اتفاق صحابه از که در مانوم دادن رو قصه سقیفه و اتفاق صحابه در کلمات عبدالله مسعود آمده خیال نکنی برد آمده و عبدالله مسعود بگه با با عثمان مخالف بود که عثمان درست کده کده کده ماش کردن که بعد از مرد فرز عبد از تا اونجایی که ما میدونیم که <تصفح> نص صحیح باشه بشه. به ذهن ما نمیاد که خدا انسانتون نبشه این قدیم صحیح که در کتب اهل سنت راج به قصه صحیفه و این اتفاق صحابه بوده و این اتفاق صحابه به امر الهی بوده و اینکه خداوند متعال این تصرف در قلوب به صحابه که این کلام عبدالله الله ولذا یکی از جواب های سنت هم همین بود از این شبهه دیروز بگفتن درسته صد نفر جمع شدن جای زرخطا لیکن این رو خدا وعده داده که اگر صد تا جمع شدن مساوی میشه واقعی جا زرخطا این تدفعه اونطور اعلامی است این شبهه دیروز مطرح کردم بیاتون هم این جواب‌های از اون شبهه دیروز پس یک جواب از شبهه دیروز چیه؟ اداز پالوش راحت کردیم شد چون شبهه دیروز این بود که آیا شما می که نفر جمع شدن جایز و خطا خب صد تا جایز و خطا به اضافه نتیجه میشه شون جایز و خطا چود شما می و خطا محصوم؟ اجماع ده ده؟ این اشتار خب طبعا آنه من ایک طولی هم بدن این مسلمه که داری وقت اگر یک مجموعی باشه یه اثر مال هیئت مجموعی است. اینو مرادش اینجا نیست. یعنی این غیر جاهلانه خطا بودن اثر هیئت مجموعی نیست. اینو من از هم توضیح دادم. گاهی اوقات افراد که جمع میشن یه اثر دارن، خود هیئت مجموعی به ماهی هیئت مجموعی هم یه اثر داره. که این مثالش هم برات از کنم. این دیوار از آجر تشکیل شده. شما هزار تا آجر رو اگر صاف سهلو همچین دیم این هیئت مجموع میگن دیوار صافه همون هزار سال کجمع عوض بشه دیوار کجه دیوار یک نواخی نیست لذا هر کدوم اثر خودشه ممکن از آجورهای شما حتی از خاتستر باشه اما دیوار خیلی صاف و مستقی باشه ممکن از آجورهای شما بهترین آجر باشه اما دیوار کجمع عوض باشه این تو مسئله اجتماعی هم خیلی نقصداره یکی از دعوه‌های معروفینه نظامهای سوسیالیستی میگه بذار دیوار صاف باشه اون‌و آجورا قرار باشه. ما اون هیئت اجتماعی رو که صاف میکنیم مثلا نظام سوسیالیستی تکوورش اینه اون رابطه اجتماعی در نظر میگیریم. مثلا هر رابطه بین ثری و غنی مثلا میشه ده برابر. حالا ولو این باشی که پول از غنی بدیم، غنیام کار درست و ما حال بدبختی، مهم نیست بر درآمدونه. اون هیئت اجتماعی صاف بشه. ممکنه است تک تک آجورها بسیار آجر باشه اما در مقابل اون تفکرات نظام بسیار سرمایز ریال به شکل مختلف شکلی که من نیم خواهد باشم به شکل خسادیش. در اون تفکرات اون تفکرات بیشتر بر اینه که ما به حیعت اجتماعی کار نداریم ما بیاییم تک تک افراز رو سعی کنیم پول دار باشن سر و سرسون بام بسا ولو حیعت اجتماعی, حیعت اجتماعی خوبی نباشه. لیکن با این بیانه من شد که اگر تک تک همخوادن ورد محالیشون خوب باشه ممکن روابطه اشتماعی یا باشه پس اشکال این آنی گفتن مستحیله این نیست چرا چون شما صد تا جایز و خطار جمع بکنی از مجموعه یعنی چیزی در میبیا مثل دیوار نیست بگرد بکنیم شما صد تا جایز و خطار جمع بکنی؟ مثل دیوار نیست که بگیم برای اجزای چه حکمه برای حیعت مجموعی چه حکمه شما ست تا جارز و خطر جمع بکنید، مثل ست تا دانیشن پروه هم شما ست تا دانیشن پروه هم بگذاریم میگیم مساویت اما این توضیح اون نظریه اش جواب ها سه تا جواب رو من عرض بکنم و بحث یک جوابشیه جواب شیعه در مقدمه اول اشکال میکنه میگه ستا جالب و قطانی تو لا تشتم و امتی یکیش معصومه تقریبی 99 تایفیر از اون خطا وجود اون لا تشتم و امتی به خاطر امیتار کن پیپ اونو کتاب الله و افراتیه اون منشر میشه که امت بر اشتباه مداره شون امت همیشه امام داره خب شکنه پس ج... سید مرزا هم میگه ولی ازا جواب شیدی شمای معروب این شد جواب دوبار همون بود که من ازن انت کردن چون انت جواب در کلمات عبدالدارم مسئول آمده درست این نظر در علمی همینطوره جایز و خطاب خطا. لیکن اینا میگن وقتی جمع شدن خدا نظر میکنه یک دست خیلی میاد تو کار به زمین میو اون دست غیبی میشه غیر جایز و خطاب این هم جواب دوم دو روشن شد جواب ثبوت این است که ما اینجا این میگیم اگر صد تا جمع شدن آخر هم جایز خطا است اما نسبت جواب خطا خیلی پایین میاد مثلا اگر یکی بود فرص نسبت خطاش هفتاد دومی دو هم میام درصد سوم وقتی یکی با دو تا جمع میشه هفتاد میشه هفتاد میشه, هفتاد میشه، هفتاد پایین این میاد پایین و اگر ستا شدن تمام علمان شدن اون نسبت خیلی میاد پایین حجیت اونه جایز خطا بودنش از بین نمیره جایز الخطا هست خوبده قطع بکنی اما این چون با هم جمع شدن نسبت جایز الخطا رو میاد پایین و به عبارت دیگر بر اثر یک ازیاد کمی حالت کیفیش عوض میشه یعنی وقتی عدد رفت روی سر روی دیویس روی سی سر اون نسبت جواز خطا هفتات نیست میشه دو درصد نسبت دو درصد در بازار و برای حجیت کافیه اینه احلی صدت احلی صدت ازشو هم جواب دوم روزن خدا به میکنه چون از کرم ان الله نظره الى قلوب اصحاب محمد اینطوری داره عبدالعوس اون اعتقادش اینه و نسان گفت این عبارات مال خوده ما عبدالرحمن مسعود ما راه المسلمون حسنا فهوبه ان الله اون عنصر الاری میشه کاری چی جواب سئوم جواب سئومردم هست به موضوع از این راه وارد میشه این جواب اصولیه دیگه شما اصول الهی رو کار می‌کشن پس شما سه جواب هم از این دارید که فردا ان شاء دیگه تماشایی میشه